فهمیم که بلا یوزاظ و اسم الله ما نه در معنا و فعل نیز من و هم یا که در و ماننده دیگه یا نورسید به سفت به سمتشید یا این جوهه نمیده شما شدید چون چیزی دیده درستانی میخورد جای که با هم و هستون هم مفرد باشند این جا کشن نباشن که این جا میگو که این لغت باید یعنی از جا با قرار چیزی که چیزی که چهارده یکی است یا نه باز یه نایت هست. پس با یه نیایت با یه چهارده یکی با چهارده یکی با و که الان داریم میاد اثانی به تقسیم چند و بعضل و sadidya at da pobla en boraba ba b ba vesi nakide um denle kable demle ye مزاد مزاد مزاد مزاد مزاد. في في و بعض که خاری از اصنا در العربی هست رضاق میشن چیم؟ باری هم کون هم با باقی رو هست مقدر بیشت و اینا بگن اطلاع چی چی؟ جا اینو بزن که قرم قرم کنی کنی شد و به از دوستان قدیه اصلی دعن مقرره الله ما در تنل تنم یاد تربیت بعد یا از جو با بابا عاشقونگیه درس بعد از جو بعد زبانی این این این دیگه کار میناه به می اما در نفر در در که می کنزم وقتی کما میگید کندوم و بود از اسمای دائمون ازاده لان تنبیل اما در, نفر در, نفر در, نفر در, نفر در قضیعی قضیعی قدر و زمین چه حال از زمین قابل رو به از لفظاً میدوشد در دات ما سال تا ها مورادان ناتینات آتما اضا و اضا دې کوم بعشران دار دل مغاذی که شخور، از صدرت uma آن ع یه بدان خالب در عصمان اینو که شایده باشند برای اینو یا یاده کتاب همین در كتاب. كتاب هم نافت درید جنات کتاب کتاب نیگه قدام کتاب از که میتونن اضاقه بشن کس به تخصیص و میتونن اضاقه نشون منقی از انبیل اضاق بکنن و ده دول اسما منقل آن و بعدی از اسما قرار ممکنه بعضی از اسما ممکنه از چیز اضافه کم مثل زمانه و اسما دشاره و اسما دشاره ممتنه ها. ممتنه ها. ممتنه ها. ممتنه ها. و اسما شهر بایده کسید حالتون گفت به این از این کتار یه و ایسپلان یه و چیه ایسا بایده در این سطح بر این عصمای دو بابا از و ابدان ما از و ابدان از اسماء حتما چیه میشه حالا این که اضافه یکی اضافه یکی مثلاً. مثلا کلمه اضاف کلمه ا کلمه حیزو اضافه میشن اما به اضافه میشن رازمال اضافه اما کلمه های مثل در نفق نفق لدا ای ای این اضافه میشن اما به اضافه یوز اضافه حلال محرده اینجا محرد و هم لفظن اضافه میشن هم معنی این اضافه حلالی در لفظن معنی بسید اومان را سعیم یعنی قاید نانه زنی قاید یعنی قاید جو تو جویی قاید تو سنید یعنی نهایت تو سنید منتحا جویی منتحا سنید من نذا در منه این در منه چیه نه لجازه ای دنید یک باید می این سو ساری بس آنکه باید در این این باید کنید باید آنکه و بعدشان حتما همیشه هم منزید بگه انه افت است. و منت ساب الاسلام انه افت ساب و منت ساب الاسلام و اندر اید اسلام که عربی سروفا بیستان از ایسار میده عربی بیستان من فستید در این که دیده همین قریش یعنی لاکنه همین قریش و از بهیدر معنی خیلی فقط و استعمالی من دردش لازم که به, به تو خود اگر من گفتم یا انه گفت بنابرای داره در اونید که احرابش این enormes estão dando. Se for da N, não há maneira de resolver. Talvez tenha uma maneira de resolver o مالی، میدید، سیزمانی، نمازم دیمه نیچه، با خروبی داره یعنید از یه دو جمع یک یا این در این در در و ینج انگój کنطمی کنم کند قنفیت و در در خ که این از اسمایی هستند که دائماً چی هستند؟ اضافه میشن و بعض رو زلزی دکرد. و بعضی از این هایی که ذکر کردیم. بعضی زلزی ان هنگو یلزم رو اضافه درشت. بعضی از این هایی که ذکر شد که همیشه اضافه میشن، مضاف دائم هستند. بعد یلزم رو ها فقط. در دیگه از از گایی لازم دارن ملازم هستن اضافه را معنی باقت در تقدیر باقت در معنی باقت مزاقه میداری هست اما در لفظ خبری ازش نیست معنی دارن و یه از این لفظن مفردن آنها و می آین در لفظ مفردن یعنی معقد او ان انه ان اضافه و در لفظ از اضافه چه شدن که کلن مثل کلمه کل کلن پی و بعد فضلنا بعضهم علا بعضهم علا بعضهم من می از, از و کلمه ای ایو حالا چهریا ای شدیه چهریا استفاده چهریای مضابقی در این کشبایی <میخده> اوقات و عوضش چی میاد؟ آد؟ و ایو نه رو مثال می که کل و بعض و عجی نه و این کلن و این کلن لما یا لما لما لیوبتیان لگو ربو که احما این کلن اگر بخونیم این کلن یعنی این چی شده عمل کرده درسته؟ این مخففه هست مصقل هست عمل کرده این کلن کنده شده یعنی این کلن انسانه مزاخونه در چی شده؟ من به جشنی مثال زیدم کلن بلکه یستاهون میفلک مطلق با یستاهون یستاهون هم قبل کن باید خلا. این کل یعنی این کلن انسانه کل اسم این این هم این مخفف هست مسقل اگر این خونده شده باشه اگر این نخونده شده باشه که دیگه مخفف هم بگیر نیست این کلن این نکلن چند قرارت داره لما لیو وفیه نمون رفت که اعمال این لما اگر ام نباشه لامش میشه لامه مزنده لام این هم باشه چون عمل کرده لامش میشه باز لامه مزنده ولی اگر خونده بود این کلون که قرائت بالای هم هست این کلون لما میشهد این این مخفف از مسقل عمل نکرده کلون مبتدا ملغام میشه لام لاجین بارغه که بعد می‌ذاره بین از فسق و انحای یعنی ما مایه بین دو تا لام کار کنه برای لما لیمبفیان بر نہون فعل مضارع با لام و نون تاکید جواب قسم یعنی والله لیمبفیان نہ رفوچه اعماله هم یو وفیانه هم هم مفهول افر اعماله هم مفهول سانیش رفوچه فائل لیو وفیانه هم یعنی تمام و کمال دار به طور کامل برداخت کرد لذا این کلن این نکلن این کلون یعنی همان هر انسانی هر یک از اینها با قسم و تحکیل میدید که پروردگار تو اعمال شده طوره. کامل و تمام تحمیل خودش خواهد هرچه به کارت میدرد بعد این لیو وقتی انده هم جواب قسم ونلا که مقدر داره یعنی قبص و منلا لایو وقتیان نمون یا اقسمو بلیلا لایو وقتیان نمون رفت بکنه همارون بعد کل جمله جمعه فعل قسم و جواب قسم و خبر این نست یا خبر این هست این مخفق از مسقلی که عمل کرده یا خبر کل هست اگر این ملوغاش نباشه ملوغ. این کلن نما لایو وقتیان نمون رفت بکنه سایست چی بود کلن بود کلن امسانی تمنی نوزه از مجد از خون فضلنا خیلو بعضهم با علا متعدد میشه علا به یعنی علا به سفر ما تدعو فلحول یعنی چیه؟ یعنی اسم چون قضیه به برینه و, حسنان و حسنان اسم تدعو دعا یدعو یدعو یدعوانه يدعو یدعوانه مخاطباش تدعو تدعو تدعون بشه میشه چی؟ تدعو نون و ما علاقه بعد از باق نشوندنده چه بشه؟ عیه اینجا چه کرده؟ تدگو رو جزمش داره بعد تدگو چه کرده عیه رو نصفش داده تا مخبوری اون برگیش مقدم هم شده بقاطه میگه عداد شرک از دسته برگید یعنی عیه اسم تدگو هر اسمی از خدای تعالی را بخانی فلحول اسماه پس برای خداست اسماه هر اسمی از خدا این کسی و لهو جزا لهو خبر مقدم الاسماع و مفتدای معخر چون جمع هست جمع مکسر غیر و عبورم هست معامله چی شده؟ مفتد معنس شده صفتش معلی چی؟ از حسن ها معنس الاحسن مثل الکبر وقتی با الافلامان بیاد باید مطابقت کنه دیگه اولو تفسیر باید چیه؟ مطابقت کنید اینجا مطابقت میکنه چون جمعه مکسر در حکمه بگیر مفرد ما مقاصد و نهره ها مقریه مقریه مخلی؟ این ما اون ما چیه؟ مای زاهی دست نبیده که اینجا تعامل شده یعنی الین و تدروع عمل کرده جذب شده، تدروع بر الین عمل کرده چه کرده؟ و بعض ما و حتماً چه امتنه ایلا او بود اسماً ظاهرن حیث و بفر میگه حالا اینایی که واجب اضافه بودن و واجبور اضافهی به سوی، مفرد هم بودن که گاری اوقات مزافون علیشون در لفظ نبود و بعضو و مادل و و حتما بعضی از اینهایی که به طور خجوبی اضافه میشن امتنه این داغوی اسم ظاهرن ممتنه است که بعد از اون قرار بدیم چی؟ اسم ظاهر یعنی مزافون علیش اسم ظاهر بگیم نمیشه یعنی حتما به زمیر ظاهر هی hey, صبح ها. هر کجای که چیه؟ در هر کجا بیان مضافنه لعیشون چیه؟ اسم ظاهره زمیر مضافنه لعیشون زمیر اسم ظاهر مثل کلمه لبک مثل کلمه وحد وحد یه بولا کرد اینها حتما حتما به چی اضافه میشن؟ به زمیر یه به اسم ظاهر اضافه گاه واب آدیسه وست مبتدا است اضافه شده به ما مضاف نمی‌شه یوزافه به ذمیر نائب و آهد. آهد سبب حتما یعنی اضافه حتما مسئول مطلق هستند یعنی است الله یعنی یعنی صفتی که جای مفهول را امتنه ایلا فائلشه امتنه این جمعه امتنه الان با فائل تمام تشکیلاتش میشه خبری که بس امتنه فیل و جمعهش حول ایلا فائل فائل امتنه هست مستر هست ایلاغ دیگه نه ولی یا یلی خودش چیه متعدیه ولی یلی را اوله دیتون دیم نونن تلیل اعراب او تنویل تلی گفتیم یعنی چیه یعنی تقعه و برد خودشو گفتیم بر سر من خودش. حالا این تلی که یه مفعولی بود بره به باب افعال میشه چی؟ دو مفعولی مثلا تلی علی اعرابه یعنی واقع میشه شود بعد از اعرابه اما اگر من بگم چی؟ بگم طولیه علی اعرابه یا طولیها علی اعرابه یعنی واقع می‌سازی اون رو بعد از یعنی قبلا بود وقع حالا میره به باب افعال میشه چی اوقع او لقا یعنی چی واقع شد وقع بعد حالا که میره به باب افعال میشه چی اوقع بعد واقع کرد حالا ایلا او هو اسما ایلا فائل است برای امتن اینجا مصدر ایلا هو یه مفعولشه اسمان ظاهرا یک مفعوله میگرشه و فاعلش حضب شده یعنی ایلاع المتکلم ایلاع المتکلم یا هو ظاهر حالا آیا هو مفعول اول است یا اسم ظاهر مفعول اول است بگیم هر کدومش رو که ما جای ایلا بذاریم ایقا و بعد بتونیم بر سرش یعنی بگیم امتن ایقا ایقا اوهو اسمم ظاهرن یعنی ایقا او متکلم واقع ساختن متکلم اسم ظاهر را او یا او رو بعد از اسم ظاهر یعنی کلمه مثل مثلا فرض کن و اون رو بذاریم به جاش و کلمه و بعد لبه بجیم واقع ساختن اسم ظاهر رو بعد از و یا واقع ساختن و رو بعد از اسم ظاهر خودمختل واقع ساختن اسم ظاهر بعد از و دیگه بعد از اون به عنوان مضاف الیه یا چیه غلطه پس وو میشه چی؟ مفعول سانی که بعد بر سرش در میاد میشه مفغول سانی که بعد بر سرش در میاد می می و حالا چرا مفعول سانی مقدم شده بر مفعول اول به دلیل اینکه اگر زمیر داشته باشیم آه برای این که اون زمیر بشه مخبول ثانی چی میشه؟ مقدم نمیشه چرا؟ چون تا جایی که میشه زمیر رو مفصل آورد مفصل نمیارند مثلا میگیم رحمه الله رحمه الله چرا خواهر مقدم نشده؟ با اون که بودتاش مقدم مقدم شده چون اگر خواهر رو مقدم میشهدیم باید زمیر رو زمیره منفصل می آوردیم و تا جایی که میشه منفصل آورد منفصل ایلا اوی اسمن ظاهره پس خب مفهوله ثانی و اسمن ظاهرن مفهوله افل حیثو زرف است زرف مکان متعلق به امتنه وقعه و زمین زمین برس خواهلش و جنبله باباها مضاف نرگی میره الان یه دونه عبارت میگم بنویسید برای اینکه رو بفهمید چون چند جای دیگه میاد ما ما لازم میشه الان نگاه کنید بنویسید ولیا ولیا ولیا لبا لبا لفاظ لا زمین را یعنی چی یعنی فقعه لبا بعد از زمین اونو بیارم چلو یعنی عبارت یا باید بگم ولی زمین و از زمین لوا این درست یعنی چ یعنی وقع از زمین رو بعد ل خب حالا ولی یعنی واقع شد الان یعنی معادلش جست نیست مصوی با و از زمین رو بعد ل و از زمین رو بعد حالا اگه ولیه رو بکنیم اولیتو تو یعنی اوقعتو اولیتو اولیتو معناش مصابی با چی میشه؟ اوقعتو اوقعتو از زمیر بعد لبا اوقعتو از زمیر بعد لبا درست شد؟ آه حالا اگر لبانه باشه زمیر باشه اگر زمیر باشه باید بگم چی؟ اولای توهو از زمیره اولای توهو از زمیره مفعول ثانی میاد چی میشه؟ مقدم میشه چرا؟ چون باید متصل میشه. حالا اولای تو نباشه ایلا باشه ایلا اضافه میشه به میشه. ایلا اوهو از زمیره ایلا اوهو از زمیره ما گفتیم ایلا اوهو از زمیره یعنی واقع شدن زمیر بعد از لبا واجبه ایشون ما گفته امتره ممتنه است. باید بگیم چی؟ ممتنه است. اسم زاهر واقع بشه من بازم نگم بسیم بیایید و بعد ما و حتماً حتما بعضی از اون چیزهایی که اضافه میشه به طور بوجودی امفننه ایلاو او اسم ظاهر Pom ممتنه هست واقع شدنه یعنی واقع کردن اسم ظاهر را بعد از اون واقع کردن اسم ظاهر را میبینیم بعد از اون اسم ظاهر را به عنوان محدود اول پر واقع کردن اسم ظاهر را بعد از اون ممتنه است. فلا یدیه فلا یدیه یعنی فلا یقا و اسم اذ ظاهر فلا یقا و الاسم الظاهر رو بعد اون، هو می به اون ون پس واقع نمیشه و اسم ظاهر بعد از اون فلا یقه اون زمیر رو شد فلا یقه الا زمیر اون پس واقع نمیشه بعد بعد از اون behind مگر؟ Muga واقع نمیشه، مگر؟ وأسنگه چون اسم ظاهر مظافنه وای نشد پس چی باید مظافنهari ذو بشه؟ هیت و بقى در هر کجا که واقع بشه یعنی ضرورت شعری دور اینجور چیزا هر کجا بیاد و اضافه شه به زمین مثال او که کبعد خبر محذوف مخصوص مثال او که ده لباب و دوا لای مثالش مثل چی وحدت لباب دوالئ سعدی اینو به هم حذف شدن یه دونه حرف حذف و دوالئ بقیه حرف حذفش اون چیه حذف شده و گفتم این در ضرورتشه اشکالی ندارد کرب براجینا عظیم العملی مروه القلب قلیل دیادی ما هم با به اضافه مانند وحد و لباب و دوالئ و سعدی و 16 واقعا با با عادته و است یعنی قابل قیاس نیست. میگه تو گفتی که حیث و وقعا هر کجا واقع بشه بگی باید اضافه شد به زمین به اسم زاهر اضافه نمیشه میگه ما یه شعر پیدا کردیم اضافه شده به اسم زاهر میده اون 16 یعنی قابل قیاس نیست استعمال شده اما قابل قیاس و شازد ایلا و یدهی للباه ایلا اینجا واسه دو اینجا شده و شازد ایلا یعنی ایقا ایقا, ایقا یدهی بعد لباه اینجا مفهول افلا دو کن چیه سر جای خودشون این زمین نبوده ایلا و یدهی و شازد از واقع شد واقع کردن یدهی رو که اسم ظاهر است بعد از لفا در اون شعر ایلا او فائل شزد مستر اضافه شده به چی؟ به مقبول اولش و لفا مقبول سانیشه میگه بچه رو با لام اومده میگه این لام عبارت است از لام خقیلیت ضم بس در شده بوده نسبت به لام مفعول دهمش لام چی آوردن تقریبا مثل مسد چون ل ما بین هدای بحال ل ما که اول سیوتی جامعه اون نکدن عامل لغه حاصل از طالب ها هم براتون لام تفیل موقعی که عامل ضعیف باشه مثل بس در اسم فاعل اسم مفعول سبب مشفع زیر مبالغه اینجور چیزا باشه که طبعاً عمل میکنه یا فرم زیب شده باشه یا این که مفهولش چی شده باشه مقدم شده باشه لامی بیارن بشه میان لامی چی چی؟ تابورون مثل انکنتوم به رویاه تابورون خود تابورون متعدیه اگه گفت بود انکنتوم هر رویاه تابورون مشکلی نداشت هر رویاه تابورون حالا که گفت به رویاه رو چیکارش کرده تمیده بشه و 16 ایلا و یدنگ که وحده نحو ازا دویم ماهو وحده ازا اضافه میشه به فعلش حد منصوب جزایش حد شد دویم با دوئیته فعل مضارع الله داخل فاعلش وحدهون حال است برای الله حالی اینجا دو تا اشکال داره یکی که معرفه است یکی که مصدر است هم به اسم و اسم زار درست نیست ازا هر دو رو با تعبیل بردن چیکار میکنن ترس رو میگم متوحدن منفردن واحدن با تغییر بردن هم نکره میشه هم حمله اسم معنا اسم اضافری مثل ازا میشه مثلا زیدان اعظم ایزا اضافی میشه که دو یان داد بعد دو جنای شرطش باید باید باید. و آیه آیه و کنت از کنت الالف بعدک لم یک شیئٌ یا إلهٌ قبلک چه شهت تا شهدا شده چه قبل در و کنت با با واسطه کنت کانه توامت یعنی وجود داشتی از کنت اون هنگامی که وجود داشتی ای خدای من به تنهایی یعنی خدایا بودی اون زمان که بودی تنها لم یکوشه اون یا اله قبلت و نبود چیزی ها هیچ چیزی نبود قبل از تو این تو بود همه چیز از تو ها فائل شد است از متعلق به کنتت الان منصوب گنته جمعهش محلم و جمعه الهی یعنی یا الهی حرف ندایش شده پنز باشه وحده که حال است از برای تای گنته بودی تنها ای خدای من اون موقع که بود یعنی وحده که حال است یعنی متوحده باهدن از برای تای گنته اول یعنی. لم یکوشه اون لم یکو تا مست. لم یکون دونش به تقفیر قصد شده شیعان پایدش هیچ چیزی وجود نداشت قبل اگه متعلق است به لطفا قبل از تو یا حلاق جهبه منترض است مرادای مزارت ممصوب است تقفیر شاهد سر کدومه وحده کرد که چیه؟ اضافه شده به زمین شعر بعدی وزدعبه اخشاهو این مره رو تو بهیم وحدی و اخشل ویاخه و المطرح این شعر مال یک نفر که میگن اینش از 300 سال عمر کرده بوده و موقعی که نزدیک به سی ست سال سالش بوده این شعر رو گفته گفته تو لا احمل و سلاح یعنی سر تو لا احمل و سلاح یعنی من جونی شدم که دیگه الان نمیتونم اصله بردارم ولا عمل کنه اصل بایی و نمیتونم سر شطر رو در اینوام راه رفتن نگه دارم این شطر سوالی خوبی کنم این نفرا اگر اون شطر رم کنه در اینوام سفر نمیتونم در اینوام جنگ نمیتونم جلوش بگیرم تو سی سد و سال میگه نمیتونم اصله بردارم اون شطر سوالشم اگر رم کنه بتونم کنم. و وزعبه بعد میگه چی؟ اخشا اخشاهو و از گرک هم می این مرد رو بهی به اگر به تنهایی از کنار گرک هم برشم و اخشر بی هر هم و المتر و از باد و توهان هم توی ریا که دیر و چه اخشا روایت شعر به نصف هست و نسبش هم سبیه هست بار رجحانی که دارد از زعبه مفهول یه اخشاغوی مقدره که این اخشاغو چیکارش میکنه تفسیرش میکنه و این واقع و زعبه این جمله فعلیه اخشاغو را عطم میکنه به جای هم از برد و لا احمد و صلاح. به جای لا احمد و جمله جمعه فعلیه به و جمعه فعلیه مزارعیه ازا نصب شد ولی اگه و زعبه بخانیم بشه خبرش جمله اسمیه رو باید اعتبارید مشکل پیدا نکنید حالا مشکل بعدش هم باز هست دومی بیده قطعیت نزد رو ایجاید اخشا این مرد بهی وحدی این این شرکیه مرد تو بهی به رفاه بهی متعلق به مرد تو انسان وحدی حال است از برای توی مرد تو یعنی واحدن این این مرد که به هی وحدی فیله شد جزاشت به غلینه اخشاقه چی شده؟ هزم شده که چونگن دلیل و جزاقه و اخشاق ریاها بلمترها اخشاقه زمین فائل ار ریاها مقبول بلمتر از بجای. ببینید این جمله و اخشاق ریاها بلمترها عطف به جای اخشاقه عطف به جای چیه؟ جمله قبله اگر ما این ریاه ریاهق اون اولی رو بخونیم وزعب و, و مرفوع بعد اخشاقو بشه چی؟ خبرش اون موقع اخشاق ریاهق عطب بشه به جای اخشاقو غلط در میده چرا؟ چون اخشاق ریاهق هم معتوف و بعد خبر خبر اصاب میشه و زمین رابط به زب بگیر نه دسته رفتی به زب لذاق پس میخونیم چی؟ وزعبت تا اونم بشه جمله فعلیه یعنی اخش از زعبر بعد و اخش ریاه و مطراه هم اخش دو جایی بود و هیچ مشکلی هم ایجاد نذار نسبش و یا اگر رفت خانیم مجبور میشه که این با واقع رو واقعات با نگیرید و شعر رو ظاهر خودش به اگر چه روایتش هم به نسمیم و لبا ببینید سه تا مثال زد چرا سه تا مثال زد یکی وقت بود یکی وقت که، یکی وقت مخاص بگه ما گفتیم به ضمیر اضافه میشه ها یه قسمه اونهایی که به ضمیر اضافه میشن به هر سه قسم بگیر اضافه میشن چه ضمیر غایب چه ضمیر مخاطب چه ضمیر متکلم وقت درو که وقت و الان لبا رو میگه که به ضمیر غایب اضافه نمیشه ضمیر هم اصلا اضافه نمیشه فقط به ضمیر چی اضافه میشه یعنی این پایین تر از این که به زمیر اضافه میشن خودشون تفصیل میشن که به همه زمائر اضافه شن یا به هستش و لبا و یختست رو به زمیر غیر غایبه مختصر به زمیری که غیر غایب باشه بقیش میسید ایر مخاطم یعنی زمیر مخاطم غیر غایب شامعه متکلم نیست نه رو لبایی کرد لغتا یکی رو دستینه درست کردید تو سمدیه که گفتیم چیه مفعول مطلق است که فعلش واجبه است گفتیم اصلش چی بوده؟ اولب و لکر البابن اولب و یاد میگیری تو مطلق لازم داریم البابن. البابن. البابن. بعد گفتیم حذف شده البابن جاش شیعستم، سابعین وریعن شده البابین نکند بعد گفتین مصدر مرخم درست میکنیم یعنی چی یعنی مصدر رو برمیگردونیم از ثلاثی فصیح به ثلاثی مجردش به جایی که بگیم البابین نکند بگیم چی لبین نکند مصدر مرخم بعد لبین رو اضافه می‌کنیم به سوی کار میشه چی نون میفته نون علت لرا و لام اجل هم و لام, خوزا. لام هم بزا چیه میفته میشه چی لبیک چی؟ یعنی اطاعت میکنم تو رو اجابت میکنم تو رو اجابتن بعدا اجابت یعنی صرف چاشیدم و در اطاعت تو هستم اجابتی بعد است اجابت اجابتا اجابتن بعدا و هیا اندسیبافی مسنده. این لبش نزد آقای سیبافی چیه مسند همین نظری که من داشتم. اول بود اکه ادبابع، بعد ادبابع این اکه، بعد لب این اکه، بعد لب این اندسیبافی مسنده. اما میگیم مسنده. یعنی دو بار اجابتت میکنم میگه پس لبک لب یعنی دو بار اجابتت میکنم باچه شما گفتید اجابتن بعد اجابتت یعنی اجابتی بعد از اجابت. اجابتی بعد. یعنی یه اجابت که بیاد یکی دیگه چیه؟ پشت میشه شد تکثیر میگه باشه حصمیه و جمع گایی اوقات دلالت برچی میکنم؟ تکثیر مثل دو قرآن داریم فر جهل و سره کرلته ایم فرج البسره کرلتین آیه رو برید کنید کرلتین اونجا یعنی کررات با کرلتین چشم انسان و که آیه میگه نمیشه تصمیه دلالت بر چی میکنه فرج البسره کرلتین درسته که این مفهول و پطلقه. اما به معنی کررات یعنی فرج البسره رجعاته یا مثلا این آیه دیگر که جمع دلالت و تکثیر می کنیم مثل رب ارجعونی لعنبی اعمل و سال اندبی ما ترکیم کلا اینها کلمتون و با و آهنها که بودیم کلمتون اینجا و کلمتون نها و کلمتون نها و کلمتون فدی هم رب ارجعونی اول به خدا خطاب می میگه بیگه رب بعد بگه ارجعونی بعد بگه ارجعونی یا ارجعنی ارجعنی اینجا سیغه جمع دلالت بر تکثیر میکنه یعنی ارجه اینی ارجه اینی لعنبی عمر و ساله پس میشه که کاری اوقات تصمیه دلالت بر مصنع بودن فائل بکید نمیکنه و جمع دلالت بر جمع بودن فائل بکید نمیکنه بلکه بر تصمیه و جمعه بر بلکه بر تسمیه و جمع بر جمعیت فیل برارتی کنه بر کسرت فیل برارتی کنه آمین بر مقدار زیاد بودن فیل برارتی کنه نه تصمیه و جمعه فاول لده زید. و این ده یونوس اما نزده آقا یونوس چه؟ مفرد اون اصل رو لبا. مفرد است اصلش چی بوده؟ لبا بوده لبا مثل مثلا فرض بفرمایید که اعصاب چطاست؟ مثل کلمه اعصاب فتا اضافه شده به کاف میگیم خب بعد بشه اعسا کرد و بشه چی؟ فتا کرد ما اعصار اضافه میکنیم میگیم اعسا کرد یا میگیم عسای که که، کرد اضافه میکنیم میگیم فتا کرد یا فتای ولی یا هر کجا به دست دومن؟ میگه اصلش لبا بوده به وزن فعلا بر وزن چی؟ فعلا فقلبت علف و هو یا انفر قلب شده علفش به یا در انگام اضافه میگه چیستی غیه چجوریه؟ میگه مشابه داره کنگلاب لدا و علا و علا مثل منقلب شدن علف چی؟ لدا و علا و علا موقع که به زمین اضافه میشه چی؟ لده ای که گفتم علایی که علایی که بگه این هم لبا موقعی که مثل امیر اضافه شده شده چی؟ لبایی ای که میگه این قیاس قلطه چرا چون مشبهان به تو چیه؟ لده و علا و الاس وچه شبه چیه؟ منقلب شدنه علف به یا انگام اضافه شدن به زمین مشبهان بهت این ستا وچه شبهت هم چی؟ منقلب شدن علف به یا به انگام اضافه شدن به زمیر این وچه شبه باید در مشبهان به بیشتر باشه نه در مشبه لبا نه تنها انگام اضافه شدن به زمیر علفش تبدیل به یا شده بلکه انگامی که به اسم ظاهرم اضافه شده چی؟ علفش تبدیل به یا شده خب اینجا نشون میده که لفاظیه قوی تر است از لدا و الا و الا این صدا انگامی که به زمیر اضافه میشه غلط میشه لفاظیه توبه کی به اسم ظاهر هم که اضافه میشه غلط میشه یا این باز مشابه اونها بگی بیزودی پس برابری باعث شون اینجا غلط است شباهت در اینجا وجود میگه رد در فرد یونس رد شده گردد چرا؟ به لو کان لو میگه یعنی نیست همچین چیزی بعنه لو کانم مفردن جارین مجرا ماذکر به این که اگر این لبعش مفرد باشه اما جاری مجرا ماذکر جاری مجرا باشه در این که برای مثل لدا و الا استفاده شه این که اضافه به زمینه شه رد یا بشه جاری مزرای یعنی مشبهن مشبه باشه به مازوکه اگر این مفرد باشد دستنیه نباشه و جاری مزرای مازوکه یعنی علاق و علاق و لده باشه لمتن قلب علف و رو منقلب نمیشه علفش الا من مزمنه مگر بازمیر مثل خود لدا و علاق مشبه که دیگه نباید بیشتر از مشبه به داشته باشه راست کلده و علاق و علاق دوستی سطایی سو اما وقت وجه در قبلها ها من ف بیت فلویت اما وقت وجه در ها اما پیدا شده قلب چی؟ این علف یا قلب شدن علف یا پیدا شده مع از ظاهر با اسم ظاهر بیت آتی در بیت آتی ایتی که پایین داره میگن نگاه در دعوتو دعوتو لما نابنی نسقرن فلب با لَب با لَب بی یَدای لَب با لَب بی یَدای حالا سوال سال کدومه لب بی که اضافه شده به چی به یَدای ولی باز شده لب بی یَدای بسره ولی اگه لدا اینجوری بود می گفتیم لدا چی لدا یَدای مثلا قلب نمیشه دعاو تو یعنی فرا خواندن فیل فایل لما جارو مجید متعلق است به درمو فرا خاندم لما نابنی نابر زمین نایفایل فایلش نول بقایی یا مفهولون بگیر یعنی اصابنی فرا خاندم برای آنچه که اصابنی اصابت کرد به من از مصیبت ها ناب یعنی عصابت اصابت کرد میگه من به مصیبتی اصابت کرد من رو نائبه ای به من رسید دعوتو برای نائبه ای که به من رسیده بود دعوتو کیو؟ مسورم مسور رو صدا کردم مفهول دعوت رو صدا. خب مسور چه کار کرد؟ فلب با این فلب با فعله لب با یولب یعنی حجاب یوتیب این فعل استو و فاید. فلب با ای اون فلببا یعنی فلببا مصفران یعنی فلببانی مصفران مصفر منو چه کار کرد؟ جواب مصفت بریم داد فلببا پس جواب مصفت داد مصفر فاهم آورده لبا رو هت کل روزه بود فاهم آورده یعنی به منست که خواندمش به من اجابت کرد فلبب یده مسبرن. ای مصفران این لبه دوبام مفعول المطلق است برای اون غلب با. اضافه شده بده کار که مخبول بشه فلب و یدهی مسفرین یعنی لبه ایک به دو دست مسفر اجابتاً بردر اجابتاً فلب و یدهی مسفرین اینجا لبه ای مثل لبه ایت ترکیم کنه اضافه شده به یده یدهی هم به مسفر که اسم کسی بگیست بسیار